شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صل الله علیه محمد و آله طیبین و طاهرین المعصومین و لعت دائمت و علا عدائه اجمعین و داهم و اکترین و جمعی و الحمد رحمت یا الحمد رحمین بحث راجب روایات میته بود و از کردیم که در کلمات از ما هم ادعای اجماع شده بر بطلان و حرمت بی امیتر مرحوم شیخ قبلدسال لاحسره در این مسئله دو تا مسئله رو بررسی کردن یکی جواب انتفاق بمیتر خب این کاش اینجا نیست واقعای جداگانه بررسی بشه ولی به هر حال مرحوم شیخ عبد الله نصیر اینجا مطرح کرده مسئله جواز نکفه به نکفه به هر حال حالا اجمالاً عرض بکنم مسائلی مثل همین مثلا یجوز و انتفا یا لا یجوز این درست تو فهم ما یه عنوان خاص یه جای خاصی رو پیدا نکرد خود محرمات اصول هم. مثلا ما چند تا محرم داریم یک دو سه هم و از این آقایی ما آفر تا حساب چار هزار محرم داریم نوشتاق جمع کردن ما چند تا محرم داریم این رو هم ما در فقه الان یک باب معینی نداریم با به یک مناسبتی در بحث مکاسب مرموم محقق حلیق عدسالله الله نفسه به مناسبت مکاسب محرمه در اول بحث بیر ائده از مکاسر محرمه رو فعلا این مثلا تکسب حرامه چون خود عمل حرامه ایده از محرمات رو اونجا اسم wurde و مرحوم شیخ هم قدس الله نفسه در مکاسر رو خودش رو در بخش اولش فعلا هستین به حروف تهجیهه الفبایی ای ایشان هم محرمات رو اسم بردن از الف به بعد و منشاء خوبی شده که یک مقدار محرمات الان یک جا جمع بشه بهلا این بحث در جایی خودش مستدل نیامد. و راجب میتهم میتهم ارز کردم بیشترین بحثی رو که علمای اهل سنب دارن یکی کتاب تهارت یکی کتاب لباس مسلیس و یکی کتاب بیره ما هم همینطور ما هم بیشترین بحثایی رو که داریم در همین چند بابی سرانه عرض کردم به اضافه کتاب اطعم و اشربه و به نظر ما اگر مرحوم صاحب و صائل قدسان لاها روایات رو هم یک جا جمع می بهتر بود حالا در این به حدیث شیعه من ارزی می کنم لذا در این مسئله اصولا من البته الان از بحث خارج شدم کل روایات دارم نگاه میکنم. اما اصولا در این مسئله به حسب منهج بحث مرحوم شیخ روشی که مرحوم شیخ در اینجا مطرح فرموده دو بحث است. یکی انتفاع به میته اصلا جایزه و طبعا مراد ما از انتفاع فعلا انتفاعاتی که حرام نیست مثل خوردن خوردن که قطعاً حرام وجه بحث نیست و به قول یا مثل صد ساقیه. یا مثلا فرض کنی همون میکتر به حیوانات بدن مثل سگ و مثلا اینجور حیوانات یا فرض کنی برای آزمایشگاه ببرن یا فرض کنی برش مثلا جهات و اصطلاح چیزهای مثلا از پشمش و اسuhkanش و غیر و گوشش برای ایجاد دیگری مثلا بجز یه نوع کود مثلا الان یه در میته ها رو با عنوان کود فقط میکنم با مواد دیگری تبدیل به کود میشه یا جزء مکمل های غذایی برای بعضی از حیوانات مثل جوجه و مر قرار میدن همون گوشت میته رو بهسا چرخ میکنم برای شات معینی با عنوان مکمل غذایی بحث این این انتفاعات جایزه یا این انتفائات جایز نیست این یک بحث یه بحثم خرید و فروشه و طبعاً بحث اساسی شیخ همون خرید و فروش بوده چون از بعضی از عبارات ایشون استفاده تموندار که خرید و فروش فرعه اصل مطلب انتفاعه اگر گفتین انتفاع جایز خرید و فروش هم جایز میشه اگر گفتیم انتفاع جایز نیست خرید و فروش پس در حقیقت دو تا بحث الان در اینجا شیخ مطرح میکنن یکی انتفاع و عدم جایز انتفاع دو ترتب بحث بی در او شو ممکن است ما بگیم بیش جایز نیست ولی انتفاع جایزه این چطور میشه به این معنا میشه که اگر انسان خودش گوشت‌خوری داشت بابی داشت مرد ما مثلا ازش خودش میتونه استفاده بکنه مثلا قزای حیوانات بده کود ازش قرار بده فاصون سد صافی به حساب برای توی جوبا آب جلو آب بده این کارها رو خودش یا از پوسش استفاده بکنه گوستش رو بکنه به عنوان کیس ثابت من مشک و تیخ به کار می بردن پس از خودش میتونه خودش استفاده کنه اما حق انتقال نداره حتی همونی هم که خودش استفاده می انتقال نداره یعنی می خواهد بگیم بین این دو تا بحث ملازمه نیست انتفاع یک مسئله است و به انتقال دادن مسئله دیگریه حتی این مسئله رو ارز می کنیم. مثلا خود اهل سنت معروفه در این اونها که جلد میته شاید خیلی شرحت واسعی داره به استثناءی بعضیشون جلد میته یا میتره یا مطلقه یا با دباقی میشه استفاده کرد اما در این حال باز بردشون احتقال دارن با این که میشه استفاده کرد قابل خیلید فروش نیست چون دلیل در نحیه به رو مستقل میگونن و این مطلب رو من صادقا کرارا نهارز کردن یکی از جهاتی که اصولا از اصل صحابه ما, ما بعد چیزی رو به نام فقه و زوق فقهی و فقهی درست کرد همینه در این بحث همینه و اون بحث ابارت از بحث ملازمات و لوازه لکه نه در حد کبروی در حد صغری، در حد موردی نه در حد کبرا. من عرض کردم در تاریخ اسلام در تاریخ فرهنگستانی اسلامی فقه قبل از حدیث تدویل شد و اینکه الان ماها غالبند شد به عکس باشه اول مثلا حدیث و شمون حدیث یاد میگه بعد وارد فهم میشیم اما تدوین زمانی از سالهای نوت ست توسط از سجاد افتدا اند و بعد هم اهل سنت فوقاهای اهل سنت بزرگانشون و مذاهبشون ما بین ست تا دیویسته ابو هنیفه این چارتقیه معروف به استثنان احمد بنه همبر این ستقیه معروفشون که مالک و ابو هنیفه و شافی باشن در این فتر هستن فقهای های غیر معروف هم مثل اوزایی که دیروز فتراشو خوندیم مثل لیز که دیروز که اتون روی اصلا که در مدینه بوده مثل زیاده دیگه یکی که نیستم ابن جره چی در مکه بوده بزرگان فقهاشون همه در این زمانه هست ولذا و اما بزرگان محدثینشون دیویست تا سی صد هست تدوین فقه در عالم اسلام غیرت تشیع در عالم غیر شیعه تبدیلی نفرد بر تبدیلی نهدیس مقدمه تمام سه‌اهست ماه به نیز ص تا 300 306 مال مسلمان به نظره یعنی 300 306 نیز ص وفات خود بخاری تمام سه‌اه است و وفاتشون اصحابشون ماه به نیز تا 306 اما بزرگان زرگان فقهها در قرن اول اواخر قرن اول مثلاً فقهای ثبیعی مالینه که یکیشم پدرخانه من هست باقیه من باقیه دخترشون قاسم محمد اغلب فقهای است. این در اواخر قرن اول بزرگان فقهای به اصطلاح سنی و ائمه ما علیهم السلام که منشأ تدوین فقه اینها در اواخر قرن اول و قرن دوم اما حدیث در قرن سوم اون وقت اصول که الان ما بحث و اصولی داریم تدوین و اصول اواخر قرن دوم یعنی ما بین حدیث و مابین فقه از سالهای 170 سال 180 سال و معروف کتاب البته قبلش هم بوده هاسوس شده میخواستم میگم نبوده اما دیگه مدرن بشه توسط ال در بیات که الان دست و گیرسته مثلا شاید 20 سال 30 سالی که میگه فلسفه اصول که میگه که میگه باشه مثلا آقا فلسفه اصول درست اگر فلسه بعد از 30 سال 40 سال شده یک ال بنوشته شود اثر میشد یک 20 30 سالی همیشه تو و قوس داره داره بعد مثلا بشه یک ال در میاد خود اصول اواخر قرن دومه و بعد در قرن سوم این نقطه است که زرافتی داره که آثاری داره و در اصول یه مقداری از ملازمات کبروی رو در اصول آورده بودن مثل این که مقدمه واجه واجه و نه امرو بشه مون به نهی از یه ملازمات سقربی رو و حدودش رو در فقر بزشته. و حقیقت فقر هم در اهد صحابه همین بود یعنی اساس این بود مراد چیه؟ مثلا پیمنبر فرمود که شما انتفا به پوست این میته بکنید حالا به دباقی یا بدون دباقی نفس موردش در انتفاه فکر نیاد چیم گفت حالا که انتفا جازه پس به اینش این همون دعو... سر دعوی سر دعوای فقه ها از سبر این شد اون یکی نوازی گفت بابا روال گفته انتفا نگفت خیلی فروش پس بیای ما همون انتفاع رو قبول ر اما خیلد فروش نه مثل ظاهری ها اونها میگفتن درسته حدیث ها گفت انطفاء قبول انتفا یعنی فقط شما بهره میگیید یک حیواری داشتی میته بود شما اصلو میته کیسی دیگه بود میته تو کوچه شما داریم پوستش رو دباغي بکنید ازش استفاده بکنه. توش مثلا خیگش بکنید مشش بکنید مثلا روغنی در اون زمان رایج دو دوغی ماستی کره چیزی تو اون مش خراب دین نشه اما حق خیلد فروش نده چرا چون یک نصی از شاره آمد که فرمود ان الله حرم بیع المیتة حالا که گفت حرم بیع المیتة تمام اجزای میته حرامه خب اون روایت آمد که گفت نه به پوستش به جلدش میتونه انتفاق بکنه خب جمع می بین هر دو انتفا به میته حرام الا به پوست زهر گفت پوست تا اگه دباغی نکردهم جایزه مشهور گفت نه مشهور اصول با دباقی انتفاق خیلی خوب این یک بحث بحث دوم این روایت که میگه هر رمه به یه با این قابل جمعه هر رمه به یه الا الجل بعد از اینطوری این طوری جمعه شد کنیم درست شد؟ خصوص پوست بعد از دباقی اشتار نداره. اون طرف مقابل نه این هر رمه به یه المیتن با حال خودش نگه داریم اون انتفاق به جل با حال خودش نگه تنافیشون سر ملازم این ملازمات است این ملاحظات موردی واسه بشی پس ما در فقه دو سنخ ملاحظه داریم ملازمات موردی این رو در قرن دوم اواخر قرن دوم که فقه مرتب شد و اصول مرتب شد تو فقه از اصل خارجیش نکرده ملازمات کلی رو از شیخ خارج کردن اصول ملازمات کلی مثل اینکه آیا مثلا اگه چیزی واجب شد مقدمش واجب یا نه چیزی واجب شد ضدش حرام یا نه الاخره. این بحث های کبروی رو در اصول گذاشتن ملازمات موردی رو در فقر و فقر اگر دقت بکنید اونی که شأن فقیهه اونی که دعوای در فقه همین جاست، اصل فقر همینه مثلا در ببایت آمده که زن میتونه صورتش رو کشف بکنه بانان زیرت ظاهره خب این مورد نسته دری که اختلاف نمیکنن اختلاف سر مید م ملازمه می گفتن ملازمه حس بین جواز کشف و جواز نظر مرد حالا که زن میتونه صورتش باز بکنه پس م میتونه نگاه بکنه. چرا؟ چون نباید داشتیم ام ندارو ام ندارو نظر سمون من سام مصم نظر باشین این قل اللوواامین یقا به اف پس نظر باید نظر بکنن از اون برآمد که زن میتونه کشف بکنه می گفتم بیام با هم دیگه جمع بکنیم. پس اگر زن میتواند کشف وجه بکنه، مرد هم ایشون نگاه بکنه، هم واقعی هم دعوای ملازمه. اما شما خوب در فکر بحث بکونید، شاید حدود 3 4 را از مسائل فقهی اینجوری جمع بین ادله هست ما چطوری جمع بین ادله بکونیم؟ این همون نزاع معروف. ایده از فقها میگوسن برای ملازمه هست اگر جواز کشف آمد تا جواز، خب کشف بکنه، چرا ملازمه؟ به خاطر وقوع خارجی خب اگه زغمت تو بازار با صورت باز خب مردم نگاهش بهش میافت دیگه پس بنابر این از کش ما میفهمیم جواز نذرند از اون برای ایده ای نمیگفتن نه به قول ما قول الفاطیما مولا نقین گفتن نه ملازمه ای نیست ممکن از جواز کشف داشته باشه اما مرد نظر نکنه مگر نظر اولا که غیر اختیاریه مرد به طور طبیعی چه ملازمه ای میره چه خارجی میره اون که در روایت آمده فقط نظر است به کشف فوش ملازمش که نظر باشه نیامده وقت طبعا ببینید دقت بکنید ما جواز نظر تازه حالا شده الان مثلا بسهر. و الا ممکن بود یعنی ممکن در ازاره علمی ها مسائل دیگر هم بیاد مثلا جواز لمس مثلا اگر دلیل آمد که زن میتونه مثلا نسا اجایز عج... با بسال... ادات قواعده من نسا میتونن به اصطلاح بعضی از لباس هاشون رو بردارن خب نظر بود اون میشه که دارن چون زن وقتی که زن یه روایت همون داره که جلباب و خمار بعضی داره خبار تنها اصلا جلباب که زن میپوشی دستش میپوشون تا نصف ساق رو زن با پرهر میپوشون نصف دیگش هم با جلباب خب اگر روایت که زن فیرزن میتونه قواعدون نسا جلباب رو بردارن خب نصف نفس ساقش در استثناق دست نه خویشورا نصف, نصف ساق دست که متعارف محل زینت و دینات دست بردوین ها در میه خب ملازمه آیا اون نصف اون میشه منو نس نگاه کرد یکی حالا میگه در فقایما بقیه فرو بر نمیشه میشه لمس هم کرد نه ملازمه دیگه حالا کی میتونه زن مثلا این مرداد جلاب رو یا چادر رو برداره و نصف دستش بیرون بیاد کش بکنه آیا میشه مرد اجنبی رو لمس هم بکنه اینجور جاها رو غالبا فقها دیگه ملاحظه نفرمیدن کشف دست ملاحظه نداره یا مثلا زن تا مقداری که کف باشه کف و وجه این رو میتونه کشف بکنه این اینا در زن پیرزن در زن عادی هم خود متفره کرد خب این بحث میاد حالا که میتونه کشف بکنه آیا میشه بهش نظرم کرد یا نه این بحث بحث دوم آیا میشه لمسش هم کرد وقتی کشف شد چون نفس حرامه نظر هم حرامه. فوقه ها بودن گفتن نه انصافش لمس بسیار مونشه چون چه چه؟ هیچ ملازمی نداره اگر زن تو بازار بیاد بخواد رشتو آمد بکنه تو خیابان بیاد تو ماشین بشینه و دستش بیرون باشه خب چه شو ورزش اما دیگه چه تلازم در من به دلتشم بگیره چیزی ملازم خارجی با اون ندید که دلتشم بگیره گرفتن دست دیگه توش شو آمده فردا دقیق تمام اینها بحث‌های ملازمات موردیه که فوق‌ها این رو توی سر گذاشته. یکی از هم ما هم مانه روشن شد؟ بحث کبروی کلیش رو در نظر بگیریم اون بحث کبرویش اینه که ما یک روایت داریم که انتفاع به جلد میته یا مطلقا که ما اینکه زهری قائله و حتی میگن خود بخاری هم قائل به همین به بخاری همین است یا به اصطلاح جلد میته مطلقا یا خصوص بعد الدباه از اون برم باز خود بخاری حدیست داره که ان الله هر قبی ال میته علیكم خب این ما بین دو تا در اینجا چجوری جرم بکنیم این بحث سر همین است. اونا میگن اگر آمد انتفا پیغمبر اجازه داد انتفا رو به ملازمه فایده فروش هم میشه میاد می چون فر انتفاقه. چون اگر انتفا آمد از کردم انتفا ولو او ماننده اما این احکام جرم میشن تبدیل به موضوع میشه یعنی اگر یک چیزی بود که شما میتونید اون رو مصرف بکنید، ببخشید، نگاه بداری، مثل لباس باشه بپوشی، روز سوار بشی، به رفیقتون هدیه بدین، مجموعه احکام. این اسمش میشه میشه مال. اما اگر گفتیم نه، نمیشه بخورین، نمیشه بهش نگاه بکنین، همش نه نه، میگیم این مالیات نداره، الغاء مالیاتش. وقتی آمد انتفاع شد، به جلد یعنی چی؟ یعنی مالیات ما در باب هم که بیش از مالیات چیزی نمیخوایم حالا مستاد که اون مالیات هم نمیخوایم ما بیش از مالیات پس با این انتفاع در حقیقت مالیات اثبات میشه مالیاتی اثبات شود جزاوی هم اثبات میشه در مقابل اونها میگفتن نه درست این مساله اما ملازمه نداره تعبد باشه ممکن از انتفاع باشه در ضمن البته این مسئله غیر از مسئله ملازمه تو خود حدیث هم گیر داره حالا خود اون حدیثا رو من با قطع نظر از اون متن حدیثی که پیش اینا آمده که اون متن حدیث پیش اینا پیش ما آمده من دارم حکم رو با قطع نظر از متن حدیث می خونم بنازا اونها قائل شدند ایدهشون قائل شدن که بیع میته جایز نیست الا جلد ایدهشون قائل شدن که بیع میته جایز نیست حتی جلد حتی بعد از ذبح حتی بعد از ذبح انطفاش جایزه نقل و انتقالش جایزه خوب دراز همینی هم هم بله اجازه دکتر استبانه لیدی یعنی بنا شو تحول میدونن خود میته بله نجسه اما جلدش رو تحول میدونن دیگه روزه واسه خوندی ورش این فقط مطلب حالا من یه مقدار روایت دی ارهم رو خونم من عرض کردم بله این مسئله دی میته و اینها در بله در روایات خود اهل سنت هم آمده و معروف ترین روایتشون در این جهت در بیعه میثه روایت قول خودشون صحیح است که در سفه سال فتح مکه آمده من مفصل متعرض شده ارکیلا در سال 8 در ماه رمضان سال 8 که به علاوه اگر مکه رو فتح کردند در یک روایتش داره که تا پشت به دیوار کعبه نشسته بودن و دلیه روازش داره که پیغمبر فندهشون گرفت گفت چی بود فهمدن که یعنی به اسطلاح ماها ذکر اینو حیله شرعی کردن اون خدا لعنت کنه یهود رو خداوند به اسطلاح چربی رو پیه رو دنبه رو در حرام کرد اینا برای اینکه که فرار بکنن، کنند اون رو آق کردن روغنش فروختن رو خدا خدا خب چربی رو هرام کرد اینجا روغن بعد را خدا بفهم خداینا را لعنت کنه خدا اگر چیزی را حرام کرد پولش هم حرام می شه یعنی اگر خدا گفت حرمه علیکم میته خرید پولش جواز جور دیگه هم ارزش نمیشه این روایت اصلن با اسانید دا متعذب داره من الان از کتاب بخاری می خونم این واسه ای که الان آوردم کتاب فتح الباریه تقریبا بهتری شرحی به یک معنا در بخاری است حدود 13 جلد میگم 14 جلد بسیار کتاب نافعیه آرانی که دلشون میخوان در احادیث اهل سنت کار کنه این کتاب خیلی لرشون میخوان یه مقدمه مفیدی داره که صرف نوشتنی به اصطلاح شماره نداره فوائد حدیثی و رجالی بسیار بسیار مفید داره خوبه خیلی خوده علایه هده ایشان عنوانی که زدن عنوان بی المیتت و اسنام خود بخاری عنوانش اینه کار به سند نداریم رضی الله عنهما انه سمع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بگوید به زکه عامل است این روایت خوبیشه که روشن داره مطلب البته این بحث رو خود اینجا ایشان داره خود ابن حجر در فتح الباری داره که معناش اینه که این تحریم در سال هشتم شده و این بعیده و حق با ایشانه احتمالاً در این سال رسم تقربد یه کرده بله از مدینه بوده احتمال که این در مکه باشه از الله و رسوله هو حرمه از نسخ خود این حدیث مختلفه در مثل بخاری حرمه مفرد آمده در جایده یه هم آمده میگن دو, دو سه جور توجیه شده مفرد یکی از توجیهاتش اینه که پیغمبر اکم نخواستن حرمه بگن چون اگر حرمه میگفته کنام خودشون با خدا دو نفر اصاب کردن و طبیعیه نه هر مگهی چیزی در ظل اراده حضرت حق است پس در حقیقت همون خداست من هم چیزی مرتبط با انتفع عن الهوا لذا به صيغه مفرد آورده این هست احتمال هم داره که لفظ حرمه به خاطر اینکه این فعل به هر دو نسبت داده شده شاید ایشون معنی اول ذکر کرده در شرحش معنی دوم رو بنده عرض می‌کنم من به ذهنم میاد چطور این نقطه ظریف‌تر باشه و حاصل این نقطه این باشه که پیغمبر اکبر مخاطب بگن هم خدا به هم من خدا تحریم مطلق کرده من در مقام سنت اون تحریم مطلق رو به وی رو هم شامل کرده من سابقا عرض کردم یکی از راهای سنن رسول الله اینطوریه که مثلا خداوند متعال یک امر معینی رو تحریم میکردن یا واجب میکنن پیغمبر دایره رو توسعه میدادن ما در بحث سنت چون مفصل گفتیم که تکرار مثلا ربا ربایی که در قران تحریف شده، ربای نسیئه یا ربای قرض شما مثلا 100 زره شما بعد از دو ماه 120 زره بگیر، ربای نسیه بشه. اما پیغمبر ربای نقد را هم حرام کردن. ربای نقد غیر از ربای نسیه است. همین الان شما 100 کیلو برنج بدید در مقابل 120 کیلو نقد، اینم حرامه. البته این به تحریم رسول الله، اون به تحریم الهی. اون وقت آمدند در اون زمان این فرق گذاشته در تحریم الهی و فریزه میگفتن یا فرض میگفتن یا فرز الله میگفتن و تحریم نبوی رو سنت میگفتن این تعبیر دیگر رو هم گذاشتم اون که گفتن حرام یعنی ماکان حرمت او کتاب اگر حرمت از رسول الله بود حرام نمیگفتن به احترام کتاب گفتن مثلا یکره و دالک این هم دارن که لفظی یکره در روایات ما گاهی اعم از خراحت است شامل و حرمت هم میشه. راسته نکتش اینه نکتش رو فوقه های ما توضیح ندادن نکتش هم نیست که خدمتون هستن یک نکته تعبیری رفتی هم به اهل بیت نداره خوب دقیق میکنید در قرن دوبه که هستم در نفقه هاست آمدن این نکتش رو بین فقها ها این رو در کتاب شافی هم داره در اختلاف شافی بابا هنیفه در کتاب شافی هم تصریح میکنه این رو اونجا داره خلاصه این نکته اینه که اینا اومدن برای اینکه یک مرزی بگذارن. به احترام باشه گفتن حرام اونجیه که در قرآنه. اما در غیر قرآن رو تعبیر میکردن مثلا یكره و ذلك لا و هكذا لا یم بغی له که گاهی این تعابیر با حرمتم جمع میشه. مراد از حرمت اینجا نه این حرمت به سنت. اکثر این تعابیر احترام‌آمیز بوده برای قرآن و جدا کردن فرایز از سنت رسول الله. و این طور باید ما هم آمده صحیحهی داریم از محمد المسلم از عبی جعفر علیه السلام و قال اِنَّ الْحرام كتابه و کتابه کان از سلف و یعافون اشیا و درگان مثلا گدشتگاه یه چیزایی رو قبول نداشتن اینایی که یعافون فنحن و نعافا اینا مؤزمش یا همش از سننه پس در اینجا اینالله و رسوله و حرمه یعنی هر دو با هم دیگه خدا اصل تحریف رسول تحریف رو شامله بی امکن ده الا از کردیم ما باشیم و ظاهر آیات بیشتر ظاهر آیات به اکل می کنیم این و با الله و رسول و هر رمه بی الخمر و المیته و الخزیر ببینید همون یکی در قرآن آمده ول اصنام اسنام در اینجا نیامده در عمان من عمل شیطان آمده فقید یا رسول الله ارائیت شهوم المیته فئنهو یطلا به از صفان ناهران احتران جمعه سفینه باشه که برنه یک کشتی باشه یطلا یعنی روغن مالی میشه تلی مالیدن ماریدن خارجی رو در تنده قدیم هم تلاع میگفتن مثلا این کار رو طلا بکنیم یعنی به اصطلاح به اصطلاح حالت تقریبا مثل گلمان هم نیست با اون در طب قدیم واقعا مختلف بود، گاهی خیلی رقیق می‌شد، گاهی می قلیز بود. غلیظ رو طلا می‌گشتن. اون دیگه یه چیز دیگه بود. حالا باز هم بحث داشتی. لابه ها از سفن و ها بها الجلد. ها رو با شوغت مالی این اینم نقصش روشنه این مثلا. اصولا چربی مانع فس مانع رسو چیز میشه. مانع پاره شدن میشه. خود پوست بدن هم همینطوره. در زمین که هوا سرد میشه پوست‌ها مثلا توس بچه ها ترک میکنه، با روغن چرب بکنن دیگه ترک نمیخوره کوست هم همینطور اگه یک جای باره کهانه بشه یا ترک ترک برمیداره برای اینکه ترک بر نداره، چربش میکنن یدهن و به هل جلود و یستس به ها به هر ناز مردم توس چراق نزدن روشن میکنن این هم این متن روایت هم محل کلام شده بین اهل سندن فقال علیه السلام لا خوبه حرام فقال علیه السلام لا هوه حرام این هم در سر درسیده این هوه به کجا میخوره یعنی؟ یک احتمال دادن هوه بخوره به همین منافع این میشه حکمت انتفاق چون میخوام وارد بیشیم تو بحث خود ما یه باشه گفته شده مراده از هوه زمیر برمی به این انتفاعات سلاسهی که ذکر شده حقیقا من بخواد بگه نه میتنه اصلا هیچ انتفاع بشنکنه هوه حرامه و گفته شده که چون سؤال از بیعه مراد پیغمبر از هوه یعنی بیعه فقال الله یعنی درسته منافع داره اما این منافع موجب نمیشه که موجب مبادله بشه خوب دقت بکنید مشهورشون اینجور معنا کردن زمیر به بی برمیگرده دقیق برمونید هوه حرامو نه نه یعنی چی؟ یعنی این ملازمه نیست حالا که شما انتقااب میکنین کنیدید روغن چرا میکنین روشن میکنین نه پوسته باش پسا روغن مالی میکنین برای اینجور کارا این موجب جواز ب نمیشه. خوب حرامون. از اه کل اهل سنت ای از اون ماززمشه این نست هم دارن این مشکل اهل سنت فقط بحث ملازمه نیست. این بحث ملازمه اون شیخ مطرح کرده که آیا بهمللازمت یان و اللا اینا این نست هم دارن خوب حرامون. مقال رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم قاتل الله الیهود خدا یهود رو بکشه این قاتل در اینجا باب مفاعله معنا نیست حالا دیه وقت ما گذشته وارد این بحثانش این طول میگیشه از کردیم یهود در استداه در لغت عرب دو جور معنا میشه الیهود و یهود بدون ال الفلا باز یهود بدون ال الفلا هم دو جور استعبال میشه یهوده غیره منصرف یهوده منصرف هم دیگه نکازش خبتیم مراجعه من نکتهش گفتم مراجعه شو با خود اِنَّ اللَّهُ لَمَا ها، یعنی شُهُومِ حیوانا جملو جمله از کردن جمله و اجمله لکه مطمئن سلاسی مجردش بهتره افسحه به معنای آب کردن دو بش کردن آبش کرده باقیمش کردن سم با او فا اک این هم راجع به این حدیث معروف این در خود کتاب بخاری کتاب البعیو در کتاب بخاری اواخر کتاب البعیو این بهتر سلام متعارف در کتاب بخاری به کتابهاش نسبت می‌ده. نه به این کتاب چون این کتاب خیلی متعارف نیست در اختیارتون باشه به این کتاب باقیل جلد 4 هم تا 305 درکه چون این کتاب خیلی متعارف نیست داممون به این کتاب bewاله نمیدن در کتاب البیوع بخاری تقریباً اواخر کتاب بیوع باب بیع میت که قبل کتاب الصلم باب بیع المیت قبل الاسنان آخر این باب هست به نظر من باب 70 مثلا یعنی شماره ابواب چه نداره کتاب های دیگه بخاری شماره ابواب داره بعضی‌ها شما مثلا شماره حدیث گذاشتن بیشتر به عناوین ابواب ارجاع میدن باب بیع المیت نه خیلی برید بسیار بسیار برید خب اینشالله مطلب در نظر من تا حد زیادی روشن شد مباده کار پس ما در باب میته معلوم شد غیر از مسئله انتفاق حالا جلدش آمده خود میته رو هم یعنی شهومش رو هم یک نوع انتفاق بوده اونی که از رسول الله نقل شده مختلفه اما راجب به حدیث ما و فرقه ما روایتی که داریم در ما در میتر زیاد روایت به لحاظ های مختلف به لحاظ نجاست به لحاظ تحارت به لحاظ جواز انتفاع به لحاظ نماز خوندن مانعیت برای نماز و به لحاظ سلاح مسئله خرد و فروش و به لحاظ حرمت اکل و مسئله در این ابواب داره در خود مسائل هم در ابواب متعدد داره البته ما غیر از عنوان میته که الان داریم که خودش نجسته ما بعضی هناوینی دیگه هم تو نجاست داریم من چون نیم خواهد به بحث این اصلا تو بعضی هاش جیفه داریم فقط میته نیست بعضی هاش مثلا داره که تفت اون موشی که توی قضا افتادی و تو چا باز چیز شده؟ تی که پاره شده اصلا چی شده؟ بس که تو آمونه چی میگه؟ متلاشی شده نه. متلاشی شده ما اناوین دیگه هم تو نجاست داریم حالا اون بحث نجاست یک بحث خاص خودشه در اونجا ممکن است ما آنها رو از میته به یک لحاظ هم اوسع بگیریم بگیم حتی اگر جیفه باشه ولو میته نباشه مثلا یه بوستانی رو سر بریدیم خیلی بشن کمیز خدا اما مونده مدتی جیفه شده مردار شده بوی گنگ گرفته. او هنوز نجاست داره یعنی نجاست میته یه چیزه عنوان جیفه و تسلخت و تفسخد یه عنوان دیگریه ملازمه با میته نداره من فعلا اون زرافت های بحته چون این یک نتایجی گرفته میشه که اگر میته هم نباشه حلال هم باشه لا که بوی آب را عوض کنه با اون آب اون آب هم نجاست داره فتوای اصحاب این نیستن که خب بعضیا بی‌اعتقاد به این نیستن که ما اونجا این کارو بکنیم بیشترین روایاتی که در این جهد هست در جلد در اول وسائل در ابواب ماه مطلم از اول باب آب مطلم ملاحظه زیاد رواید آورده چون بحث نجاست فعلا محل کلامن نیست وارد این بحث نمیشه یه مقدار ایشان روایات میتر و مرحوم صاحب وسائل عبدالله سره و شریف در امواب نجاسات آورده و در همون جا روی مسئله به اصطلاح اسمش چیه؟ مسئله ماله لهون نفس و سائله و ما لیسه لهون نفس و هم در اونجا مفرح شده بر از این که یک مقداریش رو ایشون در اینجا آورده یه مقداری از متنابه از این روایات رو هم در لباس المسلی آورده ایشان یه مقدارش هم تو افعه آوردن یک مقدارش هم تو باب بی آوردن اما باب مای اختصر ما فعلا چند طایفه از این روایات رو میخونیم و عمدش اون قسمتی که الان مهمه بعد از خوندن به اصطلاح این روایات متعرض این دو بخشی که ایشان در اینجا متعرض شدن اینشالله متعرض میشیم یکیش مسئله انتفا و یکیش هم مسئله به اصطلاح مسئله جوازده و عدم جوازده و اما بله روایتی که ایشان آوردن در عباب کتاب و نجاسات عباب و نجاسات آخرین باب کتاب اتحارت باب سی و چار عنوان باب و نجاس و تلمیته. من کل ما له و نفس و سائله نفس در لغت عرب به معنای خونه سائلم به یه خونی که میاد جاری میشه چون بعضی از حیوانات رو وقتی که چاقو میزدن خون ترشوه. سیالات در مقابل ترشوه جهنده. اگه ها به فارسی ترجمه کردن جهل به جریی سیالان این جاری جاری در لغت عرب بوره آبی گفته میشه که اجزاش در زمان واحد در بیشتر از یک مکانه این به جاری یعنی شما الان اینجا نظر آب بدی این جزه آبتی اینجاست این همونجا میمونه جزه بعدی نمیاد اون بگیره تفسیر جاری و ساکن در اصطلاح در فقه اینه اگر جوری هست اون جزئی که یک جاست میره جز بعدی جئولیکه جز بعدی این اسمش جارجیه اگر اجزا مکانشون عوض نمیسن بهشون میگن ساکه اجازه شما توی رودخونه که دقت بکنید توی رودخونه که باشه اگر اگه انسان استفاده بشه این آب رد میشه این آب میگن جاری سائل در حقیقت اون جاریست نگهنده به فارسی ترجمه تو جهنده در مقابل سائل در حقیقت رشه تراغش دقت خونی که تراغش نمیکنه، ماهی و تیغ بدنی خونش همیچه ظاهر میشه، اما جاری نیست چون به نهل رشه یه گفتن لی چه لفت سائله دقیقا این چون عنوانش نفس سائله است. به تو عنوان نفس سائله ما تو روایاتی که داریم حالا چون یواشواش مخواهی مطرح بکنیم هم نفس سائله رو داریم هم دم داریم یعنی در مثل ماهی گفته شده مثلا در اینها گفته شده دم ندارن خون ندارن خوب گفت بکنیم گاهی تعدیر شده که ها خون ندارن گاهی تعدیر شده که نفس سائله ندارن حالا باب سی و از ابواب نجاسال هست باب سی و پنج از ابواب نجاسال هست و باب های دیگر هست من فعلا یک مقدار اینا رو میخونم از که یه نوع عدم انسجام در کار و وسائل هست این مقداری مثلا یک مقدار از انتفاع نیتر رو ایشون اینجا آورده تو این نجاسات آورده یه مقدارشی جای دیگه آورده حالا ما کلن میخودیم این رواسه یه بباره زیادی که به درد آمون امولا راجع به کلمه نفس سائله ما راجع به کلمه نفس سائله فعلا تا اونجایی که من خبردنم حالا اینجای دیگه میگه باشه یک روایت بیشتر اونم در کتاب مرحوم شیخ توسید در این باب سی و پنج حدیث شماره دوی باب سی و پنج ادواب و نجاسات ایشون اینجور داره در دا انه و زمیر انه برمیگرده به مفید چون از مرحوم شیخ توسید در آنکه یاده انه و به مفید ان احمد ابن محمد هست کدر من سابقه ما یک احمد ابن محمد مطلق میاریم گاهی صدو میگه احمد ابن محمد ان ابید گاهی هم مرحوم شیخ مفید میگه احمد ابن محمد ان تصادفا هر دو آغاز آده هر دو هم توصیح ندارن هر دو از مشایخ اجازه هستند <تصفح> یکیش پسر ابن الولیده اشتباه نشه احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید این استاد مفیده اگر در مشایخ مفید میدید احمد ابن محمد عبی یعنی پسر ابن ولید از پدرش یکی دیگر داره به احمد ابن محمد علی، اون تو مشایخ صدوقه صدوق و حسن رتفه استاد مفیده. حسابه طبقه رجالی یک طبقه بر مفید مقدمه اصولا مفید شاگه دویشون از گرفته؟ اگر در عبارات صدوق بود احمد ابن محمد انعبی مراد احمد ابن محمد ابن یحیل عطاره محمد ابن یحیل عطار استاد نیست و از بسیار بساروهاد و فقه بزرگان اصحاب ایشون آزالی دارن بود احمد ایشون هم توسیخ نداره پس ابن الولید استاد صدوقه پسر شیخ اجازه مفیده است محمد بن یحیی استاد کُلایدی پسرش استاد صدوقه شیخ اجازه صدوقه پس ما دو تا احمد ابن محمد ان عبی داریم اگر مفید بود پسر ابن ولید از پدرش اگر شیخ صدوق گفت احمد ابن محمد پسر محمد ابن یحیی از پدرش ولید محمد ابن الحسن ابن احمد بن ولید پسرش هر دو هر دو فلرها محمدن، هر دو پسرها و احمد هر دو پسرها توسیق ندارن هر دو پسرها به اسطلاح جزوش شیوه اجازه هم افرادی که اینا رو توسیق کرده هم با اجازه مرموم استاد هم اینا رو توسیق نمی کن اینشالله فرد و بیره و سلام و محمد